که از گاوهای یهک کشاورز نگهداری میکرد این کار چندان مورد علاقه او نبود اما جانینا یتیمی بود که نه خانه ای داشت نه پول و ناچار بود که این کار بکنه یه روز که او گاوا را برای چرا به روی کوه و اطراف چراگاه برده بود صدای نالی بلندی شنید به اطراف نگاه کرد و با تعجب دید که یه شیر بزرگ روی علف های بلند دراز کشیده جانینا گفت چه شیر وحشتناکی؟ اما خیلی زود ترس او جای خودش رو به تحصف داد. آهسته به شیر نزدیک شد و گفت بذار کمکت کنم. اون وقت زانو زد و پنجه پای اونو نگاه کرد. تیغ بلندی توی پای شیر رفته بود. دختر بارامی گفت کمی درد داره. تو باید تحمل کنی تا من اونو از پات بیرون بیارم. شیر به آرامی دراز کشید و وقتی که دختر تیغ رو بیرون آورد با مهربانی به او نگاه کرد. جانینا دستش رو در گردن شیر انداخت و اونو بغل کرد. بعد به طرف گله رفت. اما از دیدن خول عظیم و جسهی که دو سر داشت و در اون اطراف قدم میزد رنگ از رویش پرید. خول داشت گله رو با خودش می برد. قبل از اینکه بتونه فریاد بزنه، خول ناپدید شد و جانینایی بیچاره به طرف مزرعه فرار کرد. از ترس عقل از سرش پریده بود و نمیدونست چه کار کنه. وقتی که دوباره تونست نفس بکشه، کشاورز رو بیدار کرد و براش داستان گمشدن گاوها رو تعریف کرد. کشاورز خیلی خشمگی شد و با ناباوری فریاد زد. یه غول چه حرف مزخرفی. به نظر میاد تو در خواب بودی و گله به داخل رودخانه افتاده و نتونسته عذاب بیرون بیاد. جانینا با اعتراض گفت که او خواب نبوده اما کشاورز گوش نکرد و اونو با چوب دستی به سختی تنبیه کرد. آن سال برای جانینا سال بسیار سخت و مشکلی بود. او گاوهای کشاورز رو گم کرده و به سختی تنبیه شده بود. اما با این حال کشاورز گاهی اونو تعدید میکرد که اونو بیرون خواهد کرد و این مسئله جانینا رو خیلی نگران میکرد. برای اینکه او جایی برای رفتن نداشت. یه روز که اولاغ را برای چرا بود بود صدایی ای شنید. به اطراف نگاه کرد. در میان علفهای بلند دوستش شیر را دید. یک زخم وحشتناک روی صورتش بود. بار دیگه قلب مهربان جانینا به درد اومد و نتونست اونو بدون کمک همونجا جا بذاره و بره. با افسار به نرده ها بست و به طرف رودخانه دوید تا دستمالشو خیس کنه شیر با تشکر اونو پذیرفت و دستشو لیسید. یه بار دیگه جانینا دستشو به دور گردن شیر حلقه کرد و اونو در آغوش اون گرفت اما وقتی به سراغ الاغ ها رفت دوباره غول دو پیداش شد و قبل از اینکه جانینا بتونه کاری کنه اونارو برداشت و از کوه پایین رفت جانینا فریاد زد حالا چه کار باید بکنم ارباب هیچ وقت حرف منو باور نمیکنه شیر همونجا دراز کشیده بود و با حس اونو نگاه میکرد جانینا با عجله راه افتاد و به طرف مزرعه رفت تمام راه رو در حالی که گریه میکرد دوید کشاورز وقتی ماجرا رو شنید شد و فریاد زد دیگه نمیخوام چیزی درباره ی قول دو سر بشنوم بعد اونو اونقد کتک زد دیگه نمیتونست رو پاهاش بیسته اما اونو بیرون نکرد جانینا به خاطر این کار خیلی از کشاورز ممنون بود چون جایی برای رفتن نداشت برحال کشاورز دیگه دست موزی بود نمیداد و جانینا بسیار سخت در از گذشته کار میکرد یک روز کشاورز بارا گفت: حتی اگه صد سالم کار کنی بازم نمیتونی پول گاوها و اولاغ ها رو بدی کشاورز تا مدتی به جانینا اجازه نداد که گله رو به چرا ببره و در عوض نگهداری از خوک ها رو بهش سپرد و به او گفت مغازه باش که دیگه اینها رو گم نکنی. اما یک روز همینطور که جانینا مواظب به ها بود باز هم شیر دید. او به نظر خیلی ضعیف و مریض می اومد. تا جایی که جانینا فکر کرد ممکنه بمیره باز همه چیز رو فراموش کرد و به طرف شیر رفت و سر پشمالشو روی پاهاش گذاشت. شیر بیحال دراز کشیده بود و حرکت نمیکرد. صدای قرشش به طرز وحشتناکی ضعیف شده و چشمهاش بسته بودن. با دیدن این منظره قلب جانینا از ناراحتی به درد اومد و پیش شیر موند. همینطور که سرشو نوازش میکرد و گفت من از تو موازبت میکنم. نمیذارم بمیری. ناگهان شیر سرش سرشو بلند کرد و با صدای انسان ها از او خواهش کرد تا پیشش بمونه و دست های جانینا رو لیسید. جانینا با تعجب بو خیره شده بود و وقتی هوا رو به تاریکی رفت، حال شیر کمی بهتر شد. و بعد از اینکه جانینا سرش رو با آرامی نوازش کرد، بلند شد و به دنبال خوکها رفت. اما هیچ اثری از اونا نبود. جانینا ترسید. با دست و پاچگی به این طرف و آن طرف دوید و آنها صدا کرد. اطراف رودخانه و گدال را نگاه کرد اما بیفایده بود. خوکها کاملا ناپدید شده بودند. مثل اینکه زمین دهان باز کرده و آنها را بلعیده بود. جنینا می دانست که این بار هم غول آنها را دزدیده. با خودش گفت: «من دیگه جرأت برگشتن به مزرعه را ندارم. این بار دیگه مطمئنم که او حتما منو بیرون میکنه. با این فکر، تصمیم گرفت تمام شب و در کنار شیر بمونه و ازش مواظبت کنه به همین دلیل به جایی که شیر و ترک کرده بود رفت اما او هم ناپدید شده بود با خودش گفت کجا میتونه رفته باشه حالا چه کار میکنه چه کسی این موقع شب اونو پناه بده جانینا هیچ پاسخی برای این سوالات نداشت او بدون اندیشه را افتاد و به طرف جنگل رفت درختی رو پیدا کرد و از اون بالا رفت و تمام شب را میان شاخه درخت گذراند. به زودی ماه از پشت ابرها بیرون اومد. وقتی که از بالای درخت به پایین نگاه کرد، با تعجب مرد جوان و بلنقدی را دید که از جاده روی رو می اومد. به سرعت خودش رو پنهون کرد. آن جوان درست زیر پای او از جاده خارج شد و به طرف محلی که پر از تخت سنگ های بزرگ بود رفت. بعد یکی از تخت سنگهای بزرگ و به حرکت در و داخل آن که به نظر جانینا مثل یک غار بود شد. جانینا کاملا گیت شده بود. با خود فکر میکرد که این جوان این وقت شب در جنگل چه می‌کند. جانینا منتظر موند او میخواست بدونی که آیا جوان دوباره از غار بیرون میاد یا نه؟ اما شب همچنان میگذشت و هیچ خبری از او نبود. نزدیک صبح تخت سنگ با آرامی حرکت کرد و ناگهان از پشت آن شیری بیرون اومد. چشمهایی جانینا از تعجب گرد شد. با خودش فکر کرد یعنی پشت آن تخت سنگ چه چی چیزیه؟ او بعد اونقدر سب کرد تا شیر از اونجا دور شد. او وقت از درخت پایین اومد و به طرف تخت سنگ رفت. تخت سنگ خیلی بزرگ بود. جانینا با خودش گفت حالا من چیکار کنم؟ این تخت سنگ باید خیلی سنگین باشه اما تخت سنگ به آسانی حرکت کرد. جانینا به داخل غار رفت و همه جا را خوب نگاه کرد. اول فکر کرد که این قسمت هم مثل های دیگه جنگله. اما جاده زیبای جلوی او بسترده شده بود. او راهش را ادامه داد تا اینکه به یک قصر باشکوه که اطرافش رو گلهای رز پوشانده بود رسید. جانینا با این فکر که بالاخره لخره موضوع را فهمیده مستقیم به طرف قصد رفت و وارد شد. او در اتاقها سرگردان بود. هر کدام از اتاقها پر از اساسیه باشکوهی بود که تا حال مانند آن را ندیده بود. همه چیز عادی به نظر می‌رسید. به بغره از که خیلی کسی و نامنظم بود. جانینا با دیدن این وضع بیدرنگ مشغول کار شد. طولی نکشید. که آشپزخانه تمیز و پاکیزه شد. یه دفعه احساس کرد خیلی گرسنه است. انگار سالها بود که چیزی نخورده بود. با خودش گفت بهتر چیزی پیدا کنم و بخورم. با این فکر به طرف قفسه رفت. در آنجا کمی نان و پنیر پیدا کرد و روی میز گذاشت و شروع به خوردن کرد. وقتی که غذاش رو تموم کرد، خانه را ترک کرد و از همان راهی که آمده بود برگشت. وقتی شب شد همونطور که انتظار داشت مرد جوان دوباره آمد و پشت تخت سنگ ناپدید شد و صبح خیلی زود شیر به جای او از آنجا بیرون اومد. همون که شیر از اونجا دور شد جانینا دوباره مثل روز قبل به خانه آمد. عشق خانه را تمیز کرد و غذایی خورد و برگشت. جانینا خیلی کنجکاو بود و تصمیم داشت این بار که مرد جوان را دید جلوی اونو بگیره او پیش خودش بکرد آن مرد به نظر خیلی مهربون میاد. من مطمئنم که به من صدمه ای نمیزنه. بنابراین شب بعد نزدیک درخت به انتظار مرد غریبه ایستاد. وقتی مرد بو نزدیک شد شرمگین از او پرسید خواهش میکنم به من بگید شما کی هستی؟ و چرا دوست من شیر هر روز صبح به جای شما از پشت این تخت سنگ بیرون میاد؟ مرد غریبه گفت من یک شاهزاده هستم که به وسیله قول دو سر جادو شدم. همان گولی که گاف ها،, ها و خوک های تو رو دزدید. جانینا فریاد زد یعنی منظورت اینه که تو هم شاهزاده و هم شیر هستی؟ من چقدر احمقم. باید حدس می زدم. شاهزاده ادامه داد. مدت هاست که غول منو جادو کرده. من روزها شیرم. ولی شبها دوباره به شکل اولم در می گفت منم از گول متنفرم. چون او گاوهای های منو دزدید و من به خاطر همین موضوع کتک زیادی خوردم و حالا جرأت ندارم به خانه برگردم. شاهزاده گفت تو به من کمک میکنی؟ جادوی این گول فقط به وسیله دختری مثل تو باطل میشه. کسی که ثابت کرد قلب مهربونی داره. جانینا گفت البته من هر کاری که بتونم میکنم. به من بگو چه کار باید بکنم؟ شاهزاده گفت تو باید به قصر من بری و از خواهرم بخوایی دست از موهاشو به تو بده جانینا در حالی که در دل میخندید گفت چه میگویی مگه دختری مثل من میتونه با یه شاهزاده خانم صحبت کنه او حتی به من اجازه نمیده که وارد قصر بشم شاهزاده با تحکم گفت تو رو پیدا خواهی کرد وقتی دست مو رو گرفتی باید با اونا یه شنل بافی و بغول بدی جانینا با اینکه از خود خیلی می ترسید، اما اصلا به روی خودش نیورد. او قول داد با آنچه که شاهزاده گفته بود عمل کنه. صبح زود جانینا از راهی که شاهزاده بو نشان داده بود به طرف قصر به را افتاد. اما مستقیما به طرف در جلوی نرفت بلکه به طرف در قسمت مستخدمین رفت. در آنجا او خودشو به شکل آشپزا درآورد. جانینا خیلی کار می‌کرد و همه جا آنچنان تمیز میکرد که او را به عنوان مستخدم مخصوص شاهزاده خانم انتخاب کردند. و سرانجام یه روز شاهزاد خانم با او صحبت کرد یه روز که جانینا سرگرم نظافت اتاق شاهزاده خانم بود او پرسید اسمت چیه دختر؟ جانینا با توازو اسمشو به شاهزاده خانم گفت و از او خواهش کرد که اجازه بده تا ازش مراقبت کنه و شاهزاده خانم قبول کرد بنابراین این جانینا هر روز به دیدن شاهزاده خانم می اومد و برای جلب رضایت او خیلی کار میکرد. بعد از یک هفته شاهزاده خانم گفت تو خیلی خوب کار می کنی. من از تو راضی هستم بگو من چگونه میتونم تو رو خوشحال کنم جانینا با خجالت گفت من فقط دوست دارم یه تکه از موهای طلایی و قشنگ شما رو داشته باشم شهزاد خانم یه تکه از موهاشو چید و به جانینا داد. جانینا با نواوری از شانسی که آورده بود شروع به بافتنش کرد. وقتی کارش تموم شد به جنگل رفت تا شیر پیدا کنه. اما اثری از شیر نبود. وقتی جانینا شیر ندید ناامید شد. اما دلش نمیخواست شکست بخوره به همین دلیل به طرف قصر خول به راه افتاد. او نمیدونست چه پیش خواهد آمد. اما وقتی به یاد دوستش افتاد به راهش ادامه داد. رفت و رفت تا به قصی خاکستری با برژهای سر به فلک کشیده رسید. در بالای قصر قول دوسر سر بود و او بو نگاه می کرد. جانینا آهسته و بحشت زده او نزدیک شد. شنل طلایی در میان دستانش بود. آن را به قول نشان داد و فریاد زد. این شنل را برای شما وافتم آه. این شنل از تار موی شاهزاده خانم درست شده. با دیدن شنل، غول هر دو سرش رو با لبخند تکان داد. سپس با گرگر گفت، به دنبال من بیا. غول اونو به داخل سالن بزرگی که پر از آینه بود برد. اونجا جلوی تمام آینه ها ایستاد و شنل رو امتحان کرد. جنینا به آرامی گفت، کاملا مناسب شماست. اما غول با صدای بلندی غرید، ساکت، این خیلی کوتاهه جانینا با گفت من اونو درست میکنم غول با غرولند گفت اینو بگیر و ببر وقتی اندازش کردی برای من بیاور جانینا با ناراحتی به قصر برگشت اما هنوز شکست نخورده بود شاهزاده خانم با مهربانی و خوشرویی به او خوشامد گفت جانینا فکر کرد شاید بتونم یه دسته دیگه از موهاشو بگیرم روز که شهزاد خانم موهای طلای خودشو شونه می کرد به جانینا کرد و گفت تو چه دختر عجیبی هستی؟ از من با مهربانی پذیرایی می و در عوض چیزی نمیخوای؟ بیا و به خاطر کارهایی که برای من انجام میدی، این دستپند رو بگیر. جانینا گفت اگه شما قبول کنید من ترجیم می‌دم یه دستی دیگر از موهای زیبای شما رو داشته باشم. شاهزاده خانم با تعجب اونو نگاه کرد. اما بعد لبخند زد و به نقره ای رو برداشت و یه دسته دیگه از موها شد چی به او داد. جانینا موها رو بافت و اندازه شنل رو بلندتر کرد. وقتی که کار بافتن شنل تمام شد به طرف کوه رفت و خودش به قصر غول رسوند. غول به تالار آینه رفته بود. جانینا به آنجا دوید. غول جلوی یکی از آینه‌های بلند ایستاده بود، و با لذت صورت زشتش رو تماشا می کرد. جانینا گفت جناب غول شنل رو آوردم. خواهش می کنم اونو امتحان کنید. غول خندید و شنل رو گرفت. اونو پوشید و قبل از اینکه به جانینا بگه هدیه اونو قبول کرده یا نه جلوی شش آینه بزرگ ایستاد و خودشو نگاه کرد. جانینا در حالی که دستاشو به هم می زد گفت سهر باطل شد. غول جواب داد نه. هنوز یه کار مونده. بعد یه خنجر نقره‌ای بود داد و با خنده وحشیانه گفت وقتی که شیر رو دیدی باید با این خنجر اونو بکشی. جانینا در حالی که چشماش پر از عشق شده بود سرش رو تکون داد و گفت شیرو محبوبم رو بکشم؟ نه، نه، هرگز نمیتونم این کار بکنم. غول پوزخند وحشتناکی زد و گفت من شنل رو میپوشم و تو باید شیر رو بکشی اون پایین کوه منتظر توه جانینا در حالی که با ناامیدی میکرد از قصر خارج شد و به طرف دامنی کوه رفت اونجا درست پایین کوه شیر ایستاده بود اون با مهربونی زمزمه کرد شیر عزیزم و نزدیک او زانو زد دستهاش رو به گردن او حلقه کرد و گفت هول از من خواسته که تو رو با این خنجر نقره‌ای بکشم. شیر پرسید: آیا شنل طلایی رو پوشید؟ جانینا سرش رو تکون داد. شیر گفت: هول راست میگه. تو باید منو با این خنجر بکشی. اگه این کارو نکنی، سحر باطل نمیشه. با شنیدن این جمله، جانینا تصمیم خودش رو گرفت. دیگه مجال فکر کردن نبود. او با خنجر مستقیما به طرف شیر حمله کرد و ضربه‌ای به او زد. ناگهان شیر ناپدید شد و به جای او شاهزادی جوان ظاهر شد. اون وقت هر دو به طرف قصر به راه افتادند. شاهزاده خانم از دیدن برادرش که مدتها بود اونو ندیده بود بسیار خوشحال شد و از خوشحالی غش کرد و به زمین افتاد. اما بعد از چند لحظه که حالش خوب شد شاهزاده ماجرای فداکاری جانینا و نجات خود را به دست او برای خواهرش تعریف کرد. به خاطر اتفاق مهمی افتاده بود تمام های کشور به صدا در و خبر ازدواج شاهزاده با دختری که سه را باطل کرده بود به گوش همه رسید. اما وقتی که این خبر به گوش کشاورز پیر رسید تنها چیزی که گفت این بود. چه مزخرف؟ تمام حرفها ها راجب قول دروغه. دخترک گاوها ها، و خوک های منو در اثر بیتوجهی گم کرد. وقتی که او بود، آنها به داخل رودخانه افتادند و شاید او به این وسیله میخواست نشون بده که اگر کسی نخواد حرفی رو قبول کنه هیچ چیزی نمیتونه تصمیم اون رو عوض کنه سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی